این شیرین ترین بوسه هایی است که من در عمر خود گرفتم در این حال من هرگز آنقدر خود را ناکام و محکوم به مصیبت نیافتم زن آشناست کمی تعمل کرد لب زیرینش را گزید به زور میخواست از جریان اشک جلوگیری کند در چند دقیقه آخر گوی اصلا وجود مرا فراموش کرد و دارد با خودش صحبت میکند مناظر گذشته تیرهش، روشن و از زنده از جلو چشمانش رد می شدند و آنچه می بیند برای اینکه بهتر به ذهنش بسپارد نقل می کند. او مرا متوجه عالم خود من کرد. بار دیگر نگاهی به تابلو که در مقابل من قرار داشت انداختم و به چشمها خیره شدم. آرزو میکردم که نکته تازه در آنها کشف کنم. چشم های صاف و شفاف آینی از گذشته این زن نهفته بود. وقتی رویم را از پرده چشم برگرداندم و به او نگاه کردم دیدم دارد به ساعتش نگاه می کند. گفت: میدانید که دیر وقت شده پرسیدم: چه ساعتی است؟ گفت: از یک هم گذشته گفتم: مرا تا از اینجا بیرون نکنید نخواهم رفت دلم میخواست تا آخرش برایم حکایت میکردید گفت آخری دیگر ندارد چطور شد که او از شما جدا شد؟ خیال میکنید که ما میتوانستیم با هم باشیم؟ نمیدانم همین را میخواهم بپرسم ای بش هم همین است اگر تا به حال به این نکته نرسیده اید معلوم می شود که نتوانستم خودم و او را به شما معرفی کنم آخر چطور شد که او را تبعید کردند این که دیگر جزو زندگی من نیست شما هم که نمیخواستید زندگی خودتان را برای من نقع کنید شما میخواستید راز این چشم را فاش کنید این را هم نمیخواستم بگویم من فقط میخواستم به شما حالی کنم که چرا با چه تصوری او مرا با چنین چشمهایی ساخته است؟ بله، رشته های زندگی من آنقدر با مال او باخته شده که این دوتا را از هم جدا کردن ممکن نیست. برگشت و نگاهی به چنجم ها انداخت، چند لحظه بر پریشانی او چین افتاد؟ گویی انتظار نداشت چنین توصیفی که او برای خود تصور کرده بود؟ در آنها بیابد سپس گفت اگر او مرا نشنخت و مرا با چین چشمهایی ساخته تقصیر او نیست مقصر خودم من هستم چون که هرگز سعی نکردم که خودم را آنچنان که هستم به او بنمایانم این جراز را نداشتم آنقدر برای او احترام قائل بودم آنقدر از او حساب می بردم که نتوانستم گذشته شوم خودم را به اون نشان بدهم ببینید این دشوار است و من نمیدانم به چه زبانی آنچه را که برای خودم گسسته است برای شما قالب گیری کنم؟ گذشته من همیشه دنبال من بوده است گذشته من همیشه مانند سایه ای مرا تغییب کرده است من چه عیبی دارم؟ چه گناه بزرگی مرتکب شده شدهام؟ چرا نتوانسم یک زندگی عادی داشته باشم؟ من می میکردم زندگی هنرمند را سر کنم. خیال میکردم این سعادت به من اعطا شده که آنچرا که ناگفته است به زبان بیاورم. حالا از نعمت خوشبختی مردم عادی هم محروم هستم. مثل ماهی که از آب به روی زمین خشک بیفتد، روی زمین میجهم و سر و دم به سنگ و خاک میکوبم. نه آن عالم علوی را دارم و نه دنیای سفلی را بیپناه و بیپشتیبان هستم. میدانید چرا؟ برای اینکه گذشته من، عوالمی که به سرم آمده، حوادثی که برایم رخ داده، همه جامانند سایه من همراه من است و من هرگز نتوانستم آن را از خود برانم. تارهایی که خانواده من در وجودم تنیده، اینها مرا در قفس داختند و من هر چه سعی کردم، نتوانستم این قشر صدر را بترکانم. این وبال امروز گردنگیر من نیست آن روز هم بود این سعادت که وقتی مردی خوشتخن و زیبا به من بگوید و من سرخ شوم این لذت را در زندگی فقط در حضور او احساس کردم وقتی او دست مرا می گرفت، من چنین خوشبختی را می چشیدم. اما فوری گذشته من، سایه من با وزن سنگینی که هر آن گرانتر میشد روخ کریحش را به من می نمود و شربت شیرین مصاحبت او را زهر حلاحل می کرد این وزن جانفرسا به حدی رسید که دیگر تا بان را ندارم هر وقت یاد خوشی و سعادتی که در زندگی ممکن بود نصیب من شود می فوری دو فکر به من دست می دهد یکی اینکه میگویم من شایسته این مرد نیستم انقدر گذشت ندارم. او یک پارچه فداکاری و محرومیت است. چطور می توانم از همه چیز خود دست بردارم؟ از لباس، از عطر، گردش، مسافرت، تفریح، از معاشرت با جوانان شوخ و خندان، از آمد و شد در مجالس رجال محترم، از مسافرت به فرنگستان، ها همه در اختیار من بود و من میبایستی از همه آنها چشم بپوشم. در صورتی که او همه چیز خود را جاه، مقام، هنر، عشق، احترام همه را میتوانست فدای افکار بلندی که در سرداش بکند. او خوش بود به اینکه دارد فداکاری میکند. او امیدوار بود و لذت میبرد. هنگامی که میترسید، هنگامی که دلهوره داشت موقعی که روزها رفیقان او را به اراده سیاسی میبردند و دستبندشان میزدند و وزنه به های آنها آویزان میکردند آینده مردمی را که دوستشان داشت در نظر میآورد و از این شکنجه و عذاب به نفع خودش به نف ایدئال خودش بهره میبرد اما منچه